محمد محمد و الحمد لله الواحد الاحد الفرد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك فلم يكن له ولي من دول و کبر و تکبیر و و صلوات و سلام علی خیر خلقی و شرف بریت سیدنا و مولانا حبیب الاله ابو الغوث المصطفى محمد صلى الله عليه صل وآله وسلم ناموس دهر امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواحنا لطراب الله دایه مجمعین من الان الا قیام يوم الدین خب این شبهای نورانی ماه مبارک رمضان به حول و قوه خداوند شرح خیلی کوتاهی رو عرض میکنم بر مواعظ و فرمایشات عمیر المؤمنین علیه السلام به امام حسن مجتبا علیه السلام در نامه 31 نهجل بلاخه و الان یکی دو شبه که به این جمله رسیدیم که من شبای قبل عرض کردن که از نوع فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام استفاده میشه که عمل به این دستور و توصیه اون حضرت در توان هر کسی نیست. خاطر این حضرت میفرماید که انس تطعته اولش میفرماید. میفرماید و انس تطعته به امام حسن میگه که اگه میتونی اگر میتوانیم که الله یکون بینکن و بین الله ذو نعمتن ففعن این روونش اینطوری میشه که ما دو شب معنی کردیم که اگر میتوانی در خانه دیر خدا هیچ وقت نری ففعه میگه این کارو بکن این خب مناعت طبع دیگه این بعضی ها طبع بلندی دارند حاضر هم که مشقت رو تحمل کنند سختی رو تحمل کنند به کسی رون اندازند این میگن مناعت تب که حالا ما دو شب راجع به این فرمایش صحبت کردیم دیگه به همین اکتفا میکنم بعد یه دو سه جمله دنبال این میفرماین که بالاخره دنباله همین فرمایشاته جمعه جمله اولین است که پشت سرش میفرماین خیلی زیباست مرارت و یأس من طلب ال الناس عین که آدم تلخی ناامیدی رو بچشه بهتر از اینه که بره در خونه مردم خار بشه ذیل بشه خیلی خوب تپ بلنگی داشته دیگه از ته تعمیر کنه مرارت الیف آدم تلخی ناامیدی رو بچشه میگه این بهتر از اینه که آدم بره در خانه مردم گردن کج کنه خودشو خار کنه میگه تلخی ناامیدی رو بچش به غیر خدا رو زن ما توی روایاتمون یه بابی داریم که با این تعبیر که الیعصو اما فی عید ناز الیعصو ما فی عید ناز آدم از اونجه که تو دست مردمه ناامید امید باشه چشش اصلا به مال مردم نباشه چش به خدا بدونه من تو حدیث دیدم وقتی که پیامبر معراج تشریف فردان در حدیث هست که به حضرت جبرئیل گفت منو موعظه کن آدمای پاک ان آدمای نورانی همش دوست دارن موعظه بشن هرچی پاکتر باشه موعظه رو بیشتر دوست داره خیلی عجیبه با اینکه مثلا خودش نماز شب خونه اصلا اما دوست داره همش موعظه بشن اما آدمی هرچی آلوده میشه از موعظه بدش میاد درست بعد از اون احتیاج داره مثلا تارک و سلاته ازم نه روزه میگیره نه نما اما بگی میخوام موعزت کنم اصلا با چاقو میزنه اصلا اصلا از میریزه بهم میگه با بلکا ما باز لبای مخوای موعزه اصلا نمیتونه اصلا پای موعزه بشینه اگر هم بگی چرا نمیشینیم میگه من همه اینا رو بلدم میگه من همه اینا رو میگه میخوای برم جای این علام منبر بگم که ما رو هستن خوشش نمیاد ولی آدمای پاک دوست دارن موئزه بشن قرآن همش موئزه است یا ای جهان قد قط جا کم من رب کم وقتی میخواد این کتا رو معرفی کنه مردم این یک موئزه ای است از طرف پروردگارشون و دیگه اینها چقدر دوستان قرآن بخونند، مرد آقا، پاک پاچ، دوستان قرآن بخونند و خداوند رو موعظه کنه. آهستن الهدیس و قبل از قول موعظه کتاب الله بهترین کلام، رستاترین موعظه کتاب خدا. حالا شما نیم وقت می‌بین شخصیتی مثل پیغمبر اکرم به جبریل که از او پایین تر بوده میگه منو موعظه کنن اینا حتی حاضرن که کسانی که از اونا پایین ترن اونا رو موعیزه کنن چون جبریل میدونه جبریل در مقابل پیغمبر اکرم سجده کرد تو قرآن دیگه خدا به ملائکه گفت آدم چیکار چکا کنین؟ سجده کنین همشون سجده کردن جبریل هم جزبش بود تو همین میراج هم تا یه جاهایی تو با پیغمبر بیاد اونجا به بعد گفت دیگه من نمیتونم گفت اگه من یه ذره بیام بالاتر پودر میشم گفت دیگه نمیکشم. رو رو گفت تو برو دیگه خدا خودش را نمایی میکنه. رو رو من حریف تو نیم من پا به پای تو نمیتونم بیام اینشون میده اون بالاتر بود و اونا خلیفت الله رو و پیغمبر ااکدم رو سجده کردن مثلا. اما با این همه پیامبر به جبیل میگه منو معزه کن اونم یه جملاتی گفت این نامات حوصله میکنین یکیش هم همینه مثلا یکیش ایش این که گفت اش ماشد فا این میت این هر جوری میخوای زندگی کن ولی آخرش مرگه برو رو پرقوب خواب شبا ولی آخر سرعت تو میذارن رو سنگ برو رو هر جوری میخوای زندگی کن ولی آخر میارن تو قبر میذارن روی کفن رو میذارن کنار این سرعت رو میذارن رو خاک بعد سنگا رو میچینن خاک می‌ریزنن اش ماشه اون آخر کار یادت باشه اعحب ماشد فئنک مفارقهو خیلی جملات عجیبی جبرئیل گفته گفت هر چی رو که میخوای دوست داشته باش دل بهش ببند ولی تو رو از اون جدا میکنن یه می روز از اون... یعنی به هر چی میخوای عشق ببرد اما از اون جدا میشی و عمل ماشیت فر انک ملاقی هر عملی میخوای انجام بده ولی بدون یه جا رو ملاقات میکنی شب اول قبل اون عمل میاد کلیبان تو میگیرد تو از توگوشد یتیم میاد گردنتو تو میگیرد چه بکن چه ب... بعضی علنی روزه میخورن این میاد گردنشونو میگیره بعضی خوام میگن گردن کلفتیه بعضی اچ میکنه مثلا خوام میگن خوام میگن داره روزه میخوره یه سیگار گرفته داره ژل یه لیوان آبم گرفته مثلا که قهرمان های المپیک که <تص uma dreams> این اومده جلو این همه آدم داره روزه میخوره میگه دلم میخواد کسی به نفس بکشه همین آقا شالله اول تطبیق میاد دو مانتونی و عمل ما شد فئنک ملاقی اما فرمودن وعلم ان شرف المؤمن صلاته بالليل چون متوجه نمیدن گفت بدون اون چیزی که شرافت مومن نماز شده، اونجایی که همه خوابن کسی با خدا رازو میازن اون با آدم میده و ازهو قناه و انما فی عید ناف این همه گفتم برای این آخری و این مویزه را چند تاشا کفتم برای این آخری و اونی که به مومن عزت میده اینه که نا معیوس باشه از اونجا که تو دست مردمه. من اسکندر مقدونی همه دنیا رو گرفت تمام دنیا رو گرفت یکی از پادشاه هایی که همه دنیا رو گرفت اسکندره کم بودن در تاریخی کشی نه بودن و سنی هم نداشت تو جوانی به اینجا ها رسید سه خیلی هم عمر نکرد جوان مرگ شد اسکندر اما از یه حکیمی از یه تو این یونان خوشش آمد خیلی کتابش رو خوندن نوشته هاش رو خون خیلی بهش علاقه من شد گفت من اینو به حضور میتلم هم <تصرف> <تصرف> ناتون بود دیگه گفت من اجازه میدم این بیاد دیدن من بنده خدا اون حکیم اومدن تو یونان به این گفتن که اسکندر به شما افتخار داده برین همدان چون اونجا بود دیگه تو همدان اونجا هم از دنیا رفت همونجا هم قبرشه گفت بری از یونان مولو بند خدا بیاد همدان اسکندر افتخار داده ببینیمش این همچین گفتش که او چرا خودش نیومد یونان منو ببینه گفت چون اون ثروتش زیاده قدرتش زیاده بی نیازه احساس میکنم من سروت زیاده و نیازی ندارم برم یونان این آقا رو ببینم هیچ احتیاجی ندارم گفت منم به اونی که خدا داده قانعم هیچ احتیاجی به اسکندر ندارم اونو ثروتش مانه شد بیاد یونان منو ببینه منو قناعتم مانه میشه برم همه دامونو ببینم. خب هیچی از نمیخوام دیدنش هم نمیره خب <تصفيق> هیچی نمیخوام خب اونها اینو افتخار میدونن که برن چهار زالم زمین ازش بگیرن استانداری فلانجا رو بگیرن حکومت فلانجا رو بگیرن نه اونا هیچی نمیخوام دستم رو جمع کردم پام دراد این آنها عزیز میکنه آقایون به خاطر این میفرماید مرار تو یفت این تلخی ناامیدی از اونجیه که تو دست مردم خیرون من طلب اعلان ناس این بهتر از این گردن کش کنه جلو مردم خب در مقابل مردم خار کنه یه فیلم تلویزیون میداد قدیمی‌ها خیلی حوال انقلاب امیرو او اینجوری بود تو این بوشهر و اینا بود این امیر بود تمام بچه های بوشه رو می زد. همه هم ازش حساب می بردن بود همه کاره بود بچه بود چاقم بود دروشت یادم مردنی که از همه کتک می‌خورد. باباش رف یه سازدهنی برای این خرید بچه های بوشه هم سازدهنی نیده بودن می این امیرو مست به این سازدهنی شد حالا اونی که مثلا هر روی اینو کتکش می زد. می آمد گفت این سازدنی می یهبار یه بار من بزنم می گفت به شرطی که منو سوار کنی ببری تو کل بوشهر بگرد گفت نوکرتم از آقا مثل اولاخ سوار این می شد سه دقیقه می دادیم بزنیم بعدم تا می آمد بزنیم می گرد می که کلی ندادی که فردا بیا دوباره سوارت بشم یه دقیقه بدم بزنیم استعمار اینه استعمار اینه میگه که این رو که تو نداری که خونه یه مودرن که نداریم ماشین اونچنانی که نه می‌خوای بعد کولی بگی تمام دنیا رو آقا دارن کولی میگیرن یه دقیقه سازدهنی بهشون میدن بزنن دارن. چون تا وقت بذاری میگیره میگه بعد دیگه چون انقدر بیشتر کولی نمی‌دن الان چی میگه این ترامپ تو جلوی خبرنگارا قراردادو بس با بن سلمان بعد نشون داده گفت من اینا رو اینجوری میدوشم <تصفيق> من میکو... با... نشون داده گوب. اینجوری میدوشم او کمه حالا باید بیشتر از این بدن خب بعد میگه شما یه هفته بدون من دوام نمیاریم من اگه حمایت همو بردارم شما یه هفته هم نمیمونیم جرعت دارین از این پولا ندیم بدیم <تصفيق> من با شما چه میکنم امام چی میگه؟ میگه آقا این تلخی یف این که بگه آدم آقا من سازدهنی ندارم من سازدهنی نمیتونم بزنم تلخ ممکنه بشه. این بهتر از اینه که تو کولی بدی به هنده از میکنی این بهتر از اینه که خود تو پیش دیگران خار که دی سازدهنی نداری دیگر بعد میفرماید و ان اليثير من الله اعظم و اکرم و من الكثير من خلقه اون روزی کمی که خدا به آدم بده بهتر از اون روزی زیادیه که مخلوق خدا بخواد به آدم بده و آدمو خار کنه و تحقیر کنه اونی که خدا میده ولو کم باشد بهتر از این است که آدم سر سفره مخلوقات بره ولو زیاد بهش بدن بعد پشت سرش میگه و این کانه من الله و جان مافدای این دید توحیدی امیر میگه اگر نگم همش از خدا <تصفح> <تصفح> یعنی اونی که خدا میده از خدا از اونی هم که مردم میده اونم از خدا <تصفح> و این کانه کلوهو من الله <تصفح> بنابرای آدم آقا به روزی کمی که خدا داده قانع باشه بهتر از این است که سر سفره این و اون بره تحقیر بشه کباب بخوره <تصفيق> چیزی کباب بخوره، همون خودش خار کند نه همون نون و که آدم می... به... میگن به حاتم تایی گفتن از خودت کریمتر دیدی از خودت بزرگتر دیدی کریم یعنی بزرگتر بزرگبارتر تاش خیلی آن آدم بزرگی بوده این آتمتایی پیغمبر و اون ایمانم به پیغمبر نیابرد اما پیغمبر این صفت سخاوتش نجاتش میده و اهل بهشته بس که این آدم بزرگی تا شطور قربونی میکرد روزای پنجشنبه. تمام عرب میومدن سر صفرش یه <تصفيق> پسند پهلوانی بود تو سخاوت. هر هفته بعد به او گفتن از خود کریمتر دیدی گفت این خارکن. <تصفيق> گفتن آقا این که بند خدا هیچی نداره که. گفت یه پنشنبه چهر تا شطور قربونی کرده بودم تمام اعیان عرب سر سفره من بودن. می خوردن و می بردن. بعد دیدم این خارکن اومده پشت یه درختی نشسته نون خشکش و آب زده همونو مشمش مش میکنه می خورد. منم کاری داشته نمیده اومدم گفتم که چرا نمیری سر سفره حاتم گفت هرکی از دسترنج خودش نهار بخوره تملق حاتم هم نمیگه ولی من برم بعد دم در سلام بشه کنم چون نمیشه که سلام نکنم برم تو بیرونم که میخوام بیام بعد خمشم بگم دست شما درد نکنم گفت نمیگم همین رو میخورم سلام بهش نمیکنم، تشکر هم از اش کنم خب دسترنج خودم رو می خورم. در مقابل حاتم که کنم این از من بلد این از من بلد این همین رو دارد میکرد. این اون روزی کمی که خدا بده این بهتر از اینه که آدم سر صفره این و اون باشد بعضی جوانه هستم مثلا ازدواج می کنم پدرزنم پول داره میگن خب مال پدرزن به در تو نمیخوره که اصلا پسراش نمیذارن به تو بده <تصفح> پدر رو در میارن میگن اصلا بری خونشون آقا مثل دشمن بهت نگاه میکنن میگن که این مفخره بچا <تصفح> پسر پسر مگه میذارن میگن که ما آب برو در خانه خدا بده پدرزن کیه برادرزن کیه همون خدایی که آقا به همه داده به شما میده بردر خانه خدا به, خدا به خدایی که به فلالی دادی به منم بده منم میخوام میگه نون پنیر بخورین نون خشت بخورید بهتر از اینه که سر صفری این و اون باشی و تحدیر بشی. من نه سرت بذارد بعد میفرماید که و حرفت و معل خیر من القنا مع الفجور درآمد کمی که توام با تقوا باشه حلال باشه این بهتر از ثروت زیادیه که همش پرومه همش حق نازه من یه جمله از شعیب براتون بخونم این جمله شعید گفته تو قرآن هم هستیم بقیت الله خیر لکم انکنتم مؤمنین بقیت الله شعیب گفته مال حلالی که کم باشه ولی برکت کنه بقیت و... یعنی مال با برکت رو میگن بقیت الله مالی که باقی میمان خیرون نکن، این بهتر از مال زیادیه که حروم باشه و برکت نکنه. بعضی مالا زیاده، برکت نداره. بعضی مالا کمه، برکت داره. مثلا مال کمه، مسجد شده. این گوهرشادو ببینید. این مالش آورده آقا مسجد گوهرشاد داره. این مال مال بابرکت. این مسجد گوهرشاد کنار حرم امام رضا ساخته. تا خدا خداس آقا اونجا عبادت میکنن برای گوهرشاد داره فهم میره اصلا این زن خدا میدونه آقا چقدر از طریق این مسجد گیرش اومده شب یک میلیاردوم این چیزایی که بعد از مرگش بهش دادن در زمان حیاتش نکرده حالا اونجا زیر قبر خوابیده نور براش میبنده میگن یه دعای کامل اونجا خوندن یه دعای نذری خوندن یه نماز جماعت چند هزار نفری خوندن کنار حرم امام رضا کسی بیاد آقا کنار حرم امام رضا دکوم بزنه کارش بگیره خیلی آدم اونجا کارش بگیره الان مسجدایی که کنار حرم امام رضا اغلب بستهن چون اونجا دیگه کار نمیگیره که که خیلی به حرم نزدیکن اغلب بستهن چون کسی دیگه حرمو ول نمیگونه که بده اونجا نماز بخونه نماز جماعتای حرمو که ول نمیگون بیان به چهار نفر اما این کنار کنار حرم حضرت رضا مسجد شده و این هم آباده این مال بقیۃ الله ادم مال حلال داشته باشه برکت کنه اما یکی مال زیاد داره همه خرج فسق و فجور میشه یا خودش یا نوهایش یا پسرهاش یا دخترهاش یا داماد همش خرج معفیت میشه زیاد برکت نداره برکت به زیادی نیست برکت به دوامه اصلا زیادی رو نمیگن برکت شما گاهی میگی عجب روغن برکتی بود یکی مثلا یک روغن پنگ کلوی خریده میگه چقدر برکت بود الان شیش ماه خونه ما این همه مهمونی کردیم این نصف شده این چون باقی مونده میگه برکت ولی یک هم میگه چه روغن بیبرکتی 17 کلوی خریدین هنوز سما نشده تموم شد چی شد؟ آب شد رفت دو دنید اونی که میمانت برکته امیر المومنین آقای یه شب افتارش رو داد به یتیم سوره حلعتا شد این برکته دیگه تا روز قیامت میخونن این سوره یتمونت تعام یه بار این کار کرده برکت کرد مگه چقدر بوده اون افطاری؟ چون میدونی افطاری از رفت ساده بود یه نون و آبی بود حتی قیمت اون افتاری چقدر بوده؟ شد اقا به پول امرو حساب میکردی مال پنجتاشون پنجزارتو من نمیشود به پول امروح پنج نفر بودن دیگه اما این تمام نمیشه این یه تار عبدالباسد میخونه منشاوی میخونه نمیدونم کریم منصوری میخونه شما میخونی الان چقدر ختم قرآن داره تو این ما میشه همشت الان اینو میخونم و یت امونت تاام علا خبه مسکین این برکت یه مال کم خدا میگه بقیۃ الله مال حلال اینجوری برکت میکنه مال حرام نه مال حرام میره ب... خرج بی دوباره میشه خرج فسق و فجور میشه خرج دوا و دکتر میشه خرج تاون ماشین میشه اصلا میره کجا معلوم نیست کجا میره اما مال حلال برکت میکنه مسجد لرزاده میشه شما میگید اینجا مسجد گوهرشات میشه آقا اینو برد می فرمید می چم داشته باشی حلال باشه بهتر از اینه که زیاد داشته باشی همش رشوه باشه اختلاس باشد نکفت باشد نجاست باشه. توجه بفرمید اینا دنباله همون جمله هست همش شبیه اونه اما میخوام یه جمله هم آخر عراعزم یه خوردم وقت گذشت اما اینو برا جوونا ها بگم یه جمله جدید من اون جملات یه شکل بودند دنباله دید. بادکنک دیدین آقا بادبودک دیدین دنباله سر جمله کنه این اونجوریه یه جمله اون بالا اومده اینا دنباله هاشه اما این جدیده حالا اگه نمیدونم امشب اینو بگم حضرت امیر به پسرش میفرماید قارن اهل تکن من منهم اینه باید با تلابه نویزن. دوباره از اون جملات کلیدی مرتضا هدید. قارن اهل الخیب تکون منوم با خوبا هم نشین شد جز اونا به حساب میاد. سگ از به کف روزی چند پی مردم گرفت و آدم شد. سعدی آقا دو بیت شعر گفته دو تا آیه قرآن رو کرده. تو دو بیت. این اینکه ادبیات ما اینقدر غنیه و اینقدر پایداره اینقدر با دوامه بعد 700 سال هنوز میگن سی. این اینکه اینا از قرآن گرفته شده تو دو به پشت سرهم ها دو آیه سگ از ها به کف روزی چند پی مردم گرفت و آدم شد. این این سگ آ سگه یه چوپانی بود سگه گله بود چشمش به اینا چفتو دل اینا خوشیشون شد این اصحاب کعب نورانی بودن اینا مؤمن بودن اینا حاضر شدن از ریاست بگذرن. از دربار بگذرن. از زندگی اشرافی بگذرن. بیان توغار زندگی بدوی رو تحمل کنن بلی دین داشته باشن اینا خیلی آدم اینا فاده اینا پست داشتن آقا اینا مثل های مثلا فارس و عربستان بودن بروبیا داشتن همه شاهزاده بودند خواب کرد. اما از پستشون گذشتن از ماشینای اونچنانی گذشتن اونا میگن نبوده منظورم های اونچنانی از کاخ گذشتن از حشم و خدم گذشتن بعد اومدن تو غار پایین ترین سطح زندگی رو تحمل کردن دیگه بدویه دیگه از اون پایینتر دیگه ما نداریم که ولی گفتن اینجا به اونجا شرف داره چون اینجا دین داریم اونجا دین این درس این درسه که آدم هر سختی رو تحمل کنه اما دین داشته باشد. ولی ارزش نداره آدم شازاده باشه وزیر باشد، پست داشته باشه قدم و عشم داشته باشه دین نداشته باشه این باخته این سگ از اینا خوشش اومد دنبال اینا رو افتاد این چوفان هی با چوب می زد می گفت گلل رو بین نکنم. می گفت کجا میری دی رو بین نکنم. بینم که دنبای نامد. هر چیز دید اعتنان نمی کنه دیگه رواش کرد. این سگه آمد دم این قار رو ساعداش نشست. و کلب هم با زراعیه بلبسید. می گفت سگه اومد درگاهیه قار رو ساعداش خوابید. حالا از خدا می برده اینا چند تا بودن؟ میگه گه یقولون سلاستون و یقولون سلاستون رابع هم کلب هم ما سگه رو نمی که ما میگیم اینا چند تا بودن؟ خدا میگه اینا سه تا بودن چهارمی سگه بوده میگه آقا ما سگه سا... می نه سگه با اینا این با خوبا نشسته این همین رو می گیم. میگه با خوبا بشنید جز به اونا به حساب میانید. آگه که بیاد با خوبا بشنید جز اونا به حساب میانید. یقولون خمستون سادس و هم کلبه. اسم این سگ و چم تو قرآن کده ها سگ نجسه ولی ببینید چقدر اسمش تو قرآن اومده. میگه نه این, این این دنبال خوبا رفته. حالا ما دنبال امامی زمان میریم. جلو شما دنبال امام موسیم میری جلو نمیری یه قلام سیاه مثل جون اومد جزوی شهده های کربلا شد با اکبر نامشو میارد یه قلام سیاه اولا آقا قلام بود جون ابوذر که از دنیا رفت اومد آزاد شد دیگه خودش اومد به امام حسن گفتش که اگه اجازه بدین من قلام شما باشم خود. خودش قلام حسن اپنه علی امام حسن که از دنیا رو اومد به امام حسن اگه اجازه دادی من قلام شما باشم عجب آدم میبود عجب آدم میبود اومد قلام امام تا چی تا روز آشورا روز آشورا امام حال بهش داد گفت تو یه اون قلام بودی طعم آزادی رو نچشید درستان نمیفهم از آزاد یا نیچی همیشون دیر درد کدی همش پرمون می اختیار خودتو نداشتی چیزی هم از عمرت باقی نمونده من آزادت میکنم تعم آزادی رو بچشی برو این آخر عمری آزاد زندگی کن این مقدارم که به من و برادرم خدمت کردی اینشالله مادرم فاطمه جدم رسول خدا روز قیامت به تو جزای نیکو میدن بگم آقا رسول الله رو فرمو جدم زامنه به ما خدمت کردی این دید خیلی کار گره خورد نه رسول الله تا فرابونی بوده لیفتولیس بوده من سر سفره شما بودم تو آسایش تو فرابونی همش سر سفره شما حالا کار گره خورده من برم من قیامت جواب مادر تو چی بدن <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> نمی... نمیگه تا کارگره بر کردی رفتی تا کارگر خورد تو کشیدی رفتی گوه <تصفح> من خودم تو رو رد آزاد میدونم تو, که... تو که نرفتی که من دارم میگم امر امامه من امرت میکنم برو تو که نکردی بری آقا داشت یک کار میکرد بره این دیگه نه دیگه کار خیلی دیگر گفت بله حق با شما گفت من سیاه هم پنیان هم. شما نمیخوای خون من با خون اکبرت قاتی شد ما کجا علی اکبر کجا خب گرفت من لیاقت اینو ندارم که با او یه جا به حساب تو اینجوری با آقا فهموندن با من اینجوری صحبتی <تصفيق> میخوای بری برو میخوای بری میدون برو همه نوشتن دیگه دو نفر و امام صورتش رو گذاشت رو صورت اون <تصفيق> میومد میومد سرا رو به دام اما دو نفر خوابی این صورت شریفش یکی همین چون, چون گفتش که <تصفيق> اسم اکبر آورد گفت <تصفيق> همون کاری که با اکبر کردم با تو میخوا. صورتش رو داشت به صورتش گفت خدایا صورت اینو سفید کن بچون بومی داد سیاه بود دیگه گفت اینو خوشعترش کن این پیش من خجالت کشید، گفت من بدنم بومی ده میگن نوری از صورت این قلام تلالو میکرد شب یازده هم کل این دشت به نور صورت این روشن. هرکی دنباله نکام کردن دشت روشنه پیش رو میگه دم از این گلامه بعد یه اطری کل دشت رو گرفته بود هرکی دنبالش میگه از بدن این گلامه امان داشته قارن قارن احل الخیر تکن من هم چه از جمله یا میگه برو با خوبا هم نشین شد جز به اونا به حساب میای یه سبعتون و سامنه هم کلب هم بعضی میگن هفتا بودن هشتونی سگه بوده سگ اصحاب کف روزی چند پی مردم گرفت و آدم شد پسر نو یه دونه آیهی دیگه یه آیهی یه خوندم آیه شد پسر نو با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد یکی هم پیغمبر زاده بود رفت با لات و خدا گفت انهُو لیسه من اون پسر تو هی بابا عبا. یعنی چی پسر تو گفت اون پسر تو یعنی چی پسر من چون خیلی حرف عجیبیه آدم ادم به یه پیغمبر بگه او پسر تو نی و پسر کیه خب انهُو عملون قوی و خب اونجور عملش صالح نی فرزند نی قیامت هم با تو مجبور نمیشه پشترش هم همینم باین با اهل شر تبن انهام از بدا فاصله بگیر جز به اونا به حساب نمی آی. از آدم های شر از, های از های فاسق فاصله بگیر تو رو جز به اونا به حساب نمیارن. با خوبا بشین همنشین نیکانشو جزو اونا به حساب میبین محبت اینجوریه بعد این تمام دیگه امرو خیلی طولانی هم شد مولای ما امیر بالا منبر بود یکی اومد پا منبرش گفتش که علی جان منو معذه کن حضرت فرمودن که خیلی شاهکار آی. حضرت فرمودن برو ببین کیا رو دوست داری قیامت با هم اونا محشورت نیکن خیلی مواظب باش عوضی دوست نداشته باشه این کسی مثلا کسی بنی اومعیه رو دوست داشته باشه معاویه رو دوست داشته باشه حالا حافظ قرآن هم باشه نماز شب با اونا محشور میشه اون گرایش خیلی مهمه هایون یکی ماویه رو دوست داره ولی نماز شب میکنه با اون مشهور میشه اما یکی امام حسین رو دوست داره حالا یه جا کوتاهی هم کرده نماز شبش قضا شده با اون مشهور میشه بعد فرمودن سنگی رو دوست داشته باشی خدا تو رو با اون سنگ مشهور میکنه یکی بود کارش رو همش ول میکرد میومد حضرت امیر رو میدید هی آشقه همینه وسط دلون دفعه دلش کلافه می ول ویل می کرد کارو می اومد از اون دور نگاه می کرد از الاخره ای زد گو چیه تو هی می آی گو آقا عشق شما کلافم کرد بیتاک می شم گو دیگه اصلا دستم به کار نمیده. ده دشتو ویل می کنم می حضرت فرموندن اگه راست بگیم میدونی کی که چشمت روشن میشه؟ چشمت روشن میشه؟ اگه راست بگی. گفت کی علی جان، گفت اون جایی که روح به جلوت میرسه. بعد همه هر کی منو دوست داشته باشه، اون جایی که روح منو میبیند از آن زمان که شنیدم ندای فموتیرنی را، از اون وقت که شنیدم هر کی بمیرد علی رو میبیند هوای موت به سر دارم. علیجان. علی جان. <تصفيق> میگم کی میشه کی میشه لحظه مرگ ما برسه ما علی رو ملاقات کنیم روز مرگم نفسی وعده دیدار بده وانگه هم تا به فارق و آزاد ببر آدم بدون آقا میمیره علی رو میبینه اصلاً امشب بمیره بهتر فردا شب به خدا شما یقین داشته باشه آقا بمیری علی میاد میبرته <تصفيق> اصلا فکر میگه کاش همین الان تموم شه همین الان آقا بیاد ما رو بردارت ببره دیگه امرو میخوام امشب میخوام ببرمتون دروازه کوفه این این خطبه ای که جوانا این خطبه ای که حضرت زینب تو دروازه کوفه خونده از شق قلقمر پیغمبر بالا تر این خیلی شاکاره های این خود به. من خودم واعظم دیگه من اگه مثلا امرو چند تا داغ دیده باشم نمیتونم منبر برم آقا مگه, هر... مگه منبر آقا چیز آسونیه ببینید. شما اگه میگین آسونیه یکی بیاد بالا اینجا بشین دو چلمه بگیم اگه آقا بز کار آسونیه الان من اگه امروه آقا چند تا داغ دیده باشم زنگ میزنم به حاجه آقای قنبری میگم اونم میاد اینجا شما همه میگید بند خدا حق داره اون دیگه نمیتونه داغ دیده زینب چند تا داغ دیده خدا جب اونا من همیشه تو سخنرانی گفتم اگه زینب بعد از آشورا میرفت تو خونه میشست و دیگه بیرون نمیومد همه میگونن حق داره بابا این هم مثل بعضی مادر شهیده مثلا مادر چهار تا شهیده این برید تو خونه بجنه و دیگه بیرون نیاد اصلا دیگه دیگه نشد همه میگن بابا دیگه از اون چه طرف خود و از اون چی موند اصلا اما اما زینب وایستاد جهاد کرد مبارزه کرد تو دهن دشمن زن مگو مردافرین روزگار کسی نمیتونه باور کنه این کسی که دارد این خطبه رو میخونه زن داغ دیده من مادر شهید دیدم بعد چهل روز تو محل خودمون از صدا و سیما اومدن و گفتن یه مصاحبه میخوایم بکنیم تلویزیون پخش کنیم پسراش نذاشتن گفتن مادر ما الان حالش طبیعی بعد چهله اونا دو روز بعد بیام کسی همه چه ماتب میکنن میگن مادر شهید تو الان چهله نه مادر ما حالت روح تازه اونا اگه می چه جوری می اومدن آوران دست به سینه می که همه دست به سینه می همه می گفتن که تبریک می گیم تسیعت بودین ولی خب نمیتونه اما یه زنی که این همه داغ دیده بعد مگه کوفه که کوفه روز دوازدهمه، یعنی با عاشورا دو روز فاصله یه شب گذشته باز بگم آقا اگه من چند شب نخوابیده باشم نمیتونم صحبتی. حالا من چند شب, چند شب آن روز نخوابیده باشم. نمیتونم صحبتی. اگه من چند روز غذا نخورده باشم نمیتونم صحبتی. حالا یه زنی آقا گروس نه هست. چند وقت نخوابیده. این همه داغ دیده. این همه تازیانه خورده. این همه کتکش زده. گل رو زنجیرش کردن پس باز آقا احتیاط کرد ابن زیاد گفت اینا رو از بازار کوفه بیاریم. اصلا بازار خود به خود شد الان منو ببرم بازار بگن سخنانی اصلا بدون بلنگو که اصلا نمیشه با بلنگو هم بخوام صحبه کنه همه میخندن میگن آقا این چی میگه گلت میشه میگن آقا این چی میگه میدن میگن آقا قاتی کرده اصلا آقا تو بازار مگه کار میگیره پیپی رو آوردم تو بازار داد در... بدین بدیم هم که نیست هزار نفر رو من در تای هزار نفر رو ابن زیاد پول داده بود تو بازار فقط هل هله کرد من زمان صدام تو از استعباس ادم 5 تا زن یا 6 تا زن یا هفت تا زن تو زنونه هل هله می‌کرد دیوارا می‌لرزد اگه آقا دیده باشین عربا جوری هله هله میکنم هفت هفتا بودن آقایون دو بعد از ظهر بود اصلا واقعا ستون ها بعد گفتم هزار تا هلله هل هل کنم گفت ندارین صدای زینب به کتی بره بی بی سرش آورد بیرون دید هر چی تو بازاره داره هله هله هل اینجا دیگه به نظر من آقایون اعمال ولایت کرد خیال نکن آقا یه کلمه بگه اسقطو این ساکت میشه. نه زینب خواست که اینجوری بشه اینا آقا یه جایی که دیگه می نمیشه از اون قدرت معنوی شونه بیبی اراده کرد بشه یک فریاد هیدری زد اسقطو راوی میگه من نمیدونم این صدا چه کرد یه وقتی دیدم طمع ساکت شد گفت قافله ها وایستاد زنگ ها متوقف شد گفت اصلا من احساس کردم کسی دیگه نفسم هم نمی چه کرد؟ بعد چه کرد فرمودن یا اهل القدر کلا بردارا حق بازا نامردار برادر منو دعوت میکنیم بیاد دوکه بین دو نهران <تصفيق> چه جگری از ما پاره کردیم چه دلهایی رو خون کردیم. رفی آقا شیعه بودن همین دو سه کلام که از اینا گفت مثل بارون گریه میکرد خود خطبه هست دا. تو خود خطبه است بی بی مکردر میگفت امیدوارم اشکاتون خوشک نشه وقتی گریه میکرد گفت گفت, گفت. امیدوارم عشقتون خو پس کی داداش منو کشته میکشین گریه هم میکنین این آخرها دیگه اینجوری سرار گوشته اینجوری رو دیوارهای پشت دستار نهره میزدن گاهی شما تو روزن ممکنه حالاتی بیدا کنی بخوای تخلیه کنی دست تو بذاری تو دهنه هرچی صدا داری در بیاری اون یک حالت عجیبی آره اومدن به ابن زیاد گفتن ابن زیاد کنفه تو مشت زیناد هر کاری بخواد میده چون آتفه مردم رو به درست گرفته گفت چیکار کنی؟ یه نانجی میگفت این خواهر برادرشو رو خیلی دوست داره تالام نشده سه روز برادرش رو ای اول اول این اولین باره که زینب سه روز برادرشو خب این سر داداشم بالا نیه ببرین نشون بدین دیگه نمیتونه ادامه یه وقتی صدای قرآن آشنا میدونه. هم هم حسپتم عن عتاب الکعبه بر همین دید صدا قرآن داداشه همین سرش رو برگردوند دید سر امام حسین سلام الله علیه دیگه با مردم فقط با این سر اول صدا زد هلال یک شبه زینب هلال <تصفيق> شب اول صورت نورانی رو بخوان تشبیه کنن میگن چی بدر تمام هلال شب چهارده اگه میخواست بگه این صورت نورانیه بعد میگفت هلال شب چارده طبقا هلال شب اول نوری نداره یه ضعیف یه نوری چرا چه تشبیه میگه هلال شب اول خدا رحمت کنه شهید غلاملی رو میگفت آخه دیشب این سر تو تنور خولی بود، همه جا خاکستر گرفته بود، از یه جای نور سوزی میکنه. بعد حلال شب اولو همه با انگوش نشون میاد. حالا شب عید فتح قدیمایی اینجوری بودی، میرفتن همه میگن میبینی شب عید؟ یه نگاه کردید، هر کی تو کوفت کردی سالیش حلال شب اول زیاد تو آسمون نمیمونه. یه چند دقیقه ای همین تا بخوایی نگاه کنیم مهم میشه یعنی میخواست بگه حسین جان تا میام باید حرف بزنم نیزدار حرکت میکنم بعد صدا زد حسین جان سه جمله زینم شعر خونده من ارزم تمام گفت حسین جان شهادت تو رو پیشبینی میکردم اصارت خودم هم. اینا رو همه رو یگون به یگون مادرم برا من گفته بود اما دیگه برا من نگفته بودن سر تو بالای نی باشه سر خواهر سالم تو من اینا رو پیش بینی نکرده بودم راوی گفت ندیدم سر رو به محمل بزنه اما دیدم خون تازه از محمل جریان داره این برام عجیبه هرچی چی کرد زینب امام باش حرف نزد قرآن میخون با زینب حرف نمی زد خیلی از برام چرا امام یک کلمه با زینب صحبت قرآن که میخون آخر صدا زد حسین جان با من صحبت نمی کنی نکن داداش لابد نمی‌دونی. اما یه دو سه کلمه با این فاطمه سخیر صحبت خب میترسم تو دامن من جون بده و <تصح> <تصح>